بسم الله الرحمن الرحيم فصل باديس كتاب أقضي وشهادات البينة بينه كفاح دليل مدرك وإذا كان مع المدعي بينة وزمانك حمره مدئي إدعا كنندي شاهد بود سمعه الحاكم حاكم نبادكوش كنت وحكم له بها وحكم كنت براي مدئي تبقى شهادة غوح فمن يشيزي الدعا كارد راه أفل هميناس كايين مدئي شاهد دارد يعنا وإن لم تكن له بيناه أما أجر براي مدئي شاهدو غوح نبود فالقول قول المدعى عليه بیمینی سخن سخن مدعا علیه هست البته با سوگندی که بخورد ببینید این بحث درگیر شدن و خسومته مدعی ادعا میکنه ادعا میکنه که این خونه مال منه این چیز مال منه ادعا چیزی میکند مدعی اگر گواه داشت خب طبق اونچه که گواهان شهادت میدن براش حکم میشه اما اگر براش بینه نبود سخن سخن مدعا علی هست ولی یمینه با سوگندی که بخورد لعن اگر امتنا کرد از سوگند خوردن اگر مدعا علی سوگند نخورد اون سوگندی که ازش طلب کردن نخورد ردت علی المدعی این سوگند بازگردانده میشه بر مدعی خب آقا تو این مدعی شاهد نداشت. روی مدعا علیه سوگند می اومد. مدعا علیه سوگند رو نخورد. ردت علی, المد... علی المدعی اینجا میاد پیشه برمی سوگند رو بر, مدع... بر مدعی فیحلف سوگند می خورد. و یستحق و مستحق می شود. بله. پس اگر مدعی بعد از اینکه که مدعا سوگند نخورد اگر مدعی سوگند خورد مستحق میشه این خیلی ساده بود زید ادعا میکند که این چیز مال من است شاهد اگر داشت که خلاص شاهد اگر نداشت مدعا علیه و میگیم آقا تو سوگند بخور که مال اون نیست و مال تو هست سوگند خورد که خورد خلاص گیرش میاد اگر نخورد مده ای رو میگیم مغاز مده علیه شما بخورد خورد مستحق میشه و اذا تدعایا شیئن فی ید ما و زمانی که ادعا کردند هر دو تا یعنی هر دو خصم ادعا میکردند چیزی را که ولی در دست یکی از آن دو بود اگر ادعا کرد هر یکی از دو طرف چیزی را که در دست یکی از آن دو بود خونه ای را ساعت را چیز را که در دست یکی بود فالقول قول صاحب الید بیمینه اینجا حرف حرف میگه سخن سخن صاحب الید است سخن کسی اعتبار دارد که اون جنس اون چیز در دستش هست ولی با سوگند و انکانه فی ما اگر اون چیز در دست هر دو تا بود تحالف هر دو تا سوگند میخونند و بین بینهما و اون چیز بعد از اینکه هر هر تا سوگند خوردند بینشون تقسیمش اگر یکی نخورد خلاص میره دست دیگری و من حلفه على فعل نفسه حلفه على البط و حالا که بحث سوگند هست میگه اگر کسی بر کار خودش سوگند خورد بر فعل خودش بر عمل خودش باید به شکل قاطعیت سوگند بخورد البته و القط به یک معنی هستم این واف اطف مترادف هست بله. من آقا اینو به این قدر خریدم باید با قاطعیت بگه به خدا سوگند که اینو اینقدر خریدم به خدا سوگند که اینو اینقدر نخریدم به خدا سوگند که اینو اینقدر فروختم به خدا سوگند که اینو این قدر نفروختم برای کار خودش با قاطیت سوگند بخوره. و من حلف علی فعل غیره اما اگر بر کار کسی دیگر سوگند خورد اینجا فرق می کنه. اگر اثبات بود فرق می کنه اگر نفی بود فرق کنه. اونجا چه نفی بود چه اثبات با قاطیت سوگند رو می ولی اگر بر کار دیگری سوگند بخورد فه امکان اثباتن اگر اون میخواست چیزور اثبات بکنه حلف الالبتی و القطع با قاطعیت سوگند میخوره ماننده چی؟ ماننده این که میگه به خدا سوگند مورس من تو را این قدر قرض داده است ها اینجا داره بر فعل مورسش مورس اونی رو میگن که شخص از اون ارث میبره فرزن پدر و پسر پسر پدرش مرده پدر میشه مورس پسر سوگند میخورد که به خدا سوگند مورس من پدر من این قدر قرض به تو داده است این عمل غیر است بر فعل کسی دیگه داره سوگند میخوره. ولی چون اثباته به قرض داده باید با قطعیت سوگند بخوره. و این کان نفیه اما اگر نفیه بود یعنی سوگند میخورد بر کار دیگری و نفیش میکرد، اینجا حلفه علی نفی العلم، اینجا سوگند میخوره و نفی علم میکنه، اینجوری سوگند میخوره. به خدا سوگند، نمیدانم که مورث من تو را از این دین بری کرده باشد. به خدا سوگند نمیدانم که مورس من بری کرده است ترا از این دین. اینجا سوگند بر نفی علم میکند. با قاطیت سوگند نمیخورد که به خدا سوگند مورس من ترا بری کرده. نه. میگه به خدا سوگند من نمیدانم که ترا بری کرده است. فصلون از شهادت و فصل بعدی در مورد شهادت و گواهی هست. ولا تقبل الشهاده الا من اجتمعت فيه خمس خصال وقبول كرده نميش گواہی مگر از کسی که پنج خصلت داشته باشه الاسلام bale gawahin pan cha khislatu dashte bashe 1 musliman bashad 2 al bulugh waligh bashad 3 al آزاد باشد پنج العدالت و عادل باشد با این پنج شرط شهادت گواه فزی رفته میشه ولی العدالت خمس شرائط و برای اینکه هم شخصی عادل باشه حالا کی کی که از شرایط گواه عادل بودن است میگه برای اینکه شخصی عادل باشه پنج شرط نیاز هست یک يك این یکون مجترمن للكبائر از گناهان کبیر دوری کند گناه کبیر انجام ندهد دو غیر مصرن على القلیل من السغائری برگناه سغیره و کوچک هم مصر نباشد مداومت نداشته باشد سه سلیم السریرتی شارحین اینو ترجمه کردن عقیده صحیح داشته باشد هم دیب بقا و هم شارحین دیگه که نگاه کردن چهار معمون الغابی معمون الغذب باشه یعنی چی؟ یعنی هنگام غذب ازش در امان باشند هنگام غضب غضبش سبب نشود که قول ناحقی بگوید یا اصرار بر غیبت کسی کند معمون الغضبی یعنی زمانی که در غضب باشد شخص از غضب او در امان بود غضبش باعث نشود در دلش نیاورد که سخن ناحق بگه اصرار بر غیبتی بکنه ناحقی بکنه پنج محافظا علی مروت مثله محافظت کند بر مروت مثلش یعنی اخلاق امثال خودش رو در عصر خودش داشته باشه متخلق به اخلاق امثالش باشد امثال خودش در دوره و زمانه خودش اینا پنج شرط بودن برای عادل بودن. فصل حق الله و حقوق الادميين. فصل بعدی و آخرین فصل در کتاب شهادات و اقضیه حق الله و حقوق ها هست. چون این مرتبط با شا شاهد هست. ببین بحث شهادت هست و فرق می‌کنه چی در حق الله شهادتی بدهد یا در حقوق انسان‌ها. ها. ول حقوق الداربانی. حقوق بردونواند. حق الله تعالى وحق الآدمي يك حق الله متعالدو حق إنسان فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضربين أما حقوق إنسانها برسنو مباشد يك ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكراني حقوق إنسانها برسنو مباشد انقروه أز حقوقي كي بزيروفتن مش در مارسون مقر شهادت دوتا مرد در مرد دو دوتا مرد شهادت بدن تا فزی رفته بشه و هو و این نوع حقوق چی نوع است مالا یقصدو منه المال منظور از این حق بحث مال نیست در قسمت اموال نیست و یطلعو علیه الرجال و غالبا مردان بر این نوع چیزها و مطلع هستند. مانند چی؟ مانند نکاه و اقرار نکاه و اقرار به شهادت دو تا مرد ثابت میشه پس حقوق آدمین برسن واسن یک نوعی که شهادت دو مرد فقط مرد قبول هست و این نوع حق حق مال نیست از اون اموریست که غالبا مردان برش مطلع میشن دو و داربون یقبل و فیه شاهدانی نوع دیگر حق حقیست که قبول کرده میشه در اون مورد دو تا شاهده او رجلون دوتا شاهد مرد او رجلون و مرعتانی یا یک مرد و دو زن او شاهد و یمین و المدعی یا یک شاهد باشد و در کنارش مدعی سوگن بخورد و هو این نوع حق چه است؟ مکان القصد و منه المال اونی هست که هدف مال باشد در اموال مانند معامله زدن که آقا من این چیزو به تو فروختم اینجا دو تا مرد اگر گواهی دادن یا یک مرد و دو زن یا یک مرد به اضافه مدهی سوگند خورد خلاص مرد قبول است سه و دربون یقبل فیه رجلون و امراتن نوع سوم یا نوع دیگر اون نوعی است که شهادت یک مرد و دو زن قبول میشه و او اربع و یا شهادت چهار زن قبول میشه و هو و این نوع کدوم نوع است مالای اطلعو علیه الرجال اون چیزایی که غالبا مردها برش آگاه نمیشد مانند ولادت و شیر دادن زنی ادعا کرد من اینو شیر دادم اینجا دیگه یا ادعای شیرخارگی شد خلاصه به هر طریقی شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته میشه یا چهار زن پس اینجا این نوع حق ثابت میشه با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن یا چهار زن اینا بودن حقوق انسان ها اما و اما حقوق الله تعالی اما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء در مورد حقوق الله میگه شهادت النساء زنان قبول نمیشه و على ثلاثة اضرب وین حقوق الله برسن میباشند یک ضرب لا يقبل فيها اقل من 4 نوعی که قبول کرده نمیشه در این نوع حق کمتر از چار مرد و هو از زنا, زنا. بله این حدود از حقوق الله هستند حد زنا ثابت نمیشه مگر با گواهی چار مرد دو و ضرب یقبل فیه اثنانی و هو ماسی الزنا زنا من الحدود نوع دوم اون حقیست که دو نفر مرد شهادتش قبول میشه حدود و این, این نوع حق کدوم هست حدود دیگر جز از زنا حده های دیگر ها؟ حده های دیگر مثل شراب و مثل تهمت و اینا این حدود با گواهی دادن دو مرد ثابت میشند اما زنان لا زنان با چار مرد سه و ضربون يقبلو فيه واحد نوع ديگر يزو حقوق الله هست كي شهادت يك نفرهم قبول مشه وهو هلال و رمضان و اونهم ديدن ماه رمضان یعنی اگر يك مرد عادل گفت كي يك مرد گفت كي من ماهو ديدن در قسمة شروع رمضان خلاص بذيروفته مشه ولا تقبل شهادت الأعمى الا في خمسة مواضع و قبول کرده نمیشه گواهی کور، انسان کور، انسان نابینا، مگر در پنجه. الموت، در مورد موت، شهادت بدد که شخصی مرده است. دو و نسب، اثبات نسب برای شخصی، اینجا هم شهادتش پذیرفته میشه. و ملک المطلق، در مورد م... م... ملک مطلق هم پذیرفته میشه. بر این اساس اگر کوری گواهی داد که خونه ای ملک زید است اینجا شهادتش پذیرفته میشه چون اینجا به ملک مطلق شهادت داد اما اگر ممنون شهادت داد که زید اینو خریده اینجا دیگه مقیدش کرد آه این این شهادتش پذیرفته نمیشه پس شهادت کور پذیرفته نمیشه مگر در پنجا در موت در نسب، در ملک مطلق سه در ترجمه یعنی مترجمه کند سخن را سخن را ترجمه کند پذیرفته میشه و ما شهده به قبل العما پنجمین جا اون جایست که قبل از کرودن چیزی رو دیده و شهادت اون چیز چیزو بده پس گواهی بدهد به چیزی که گواهی اونو قبل از کور شدن علمش رو حاصل کرده مانند اینکه دیده زید خونش رو به امر فروخته بعد از اون کور شده حالا اگر اینجا اومد شهادت داد شهادتش به این معامله قبول میشه زیرا این جواهی از اون اموراتی است که قبل از کور شدن مسائل شدیده دیده شیش اینجا گفته بود بر پنج ولی خب این ششمی هم هست و علی المزبوط یعنی یکی از جاهای دیگه‌ای که شهادت کور پذیرفته میشه زمانی است که شهادت بدهد بر شخصی که اونو با دستش نگاه داشته مثلا یه شخص میاد در گوش کور یک سخنی میگه، یه اقراری اقرار میکنه اینجا کور دستشو میگیره و میبره پیش قاضی و براله این شخص انچرا که شنیده انچرا که در گوشش کفته شهادت میده اینجا شهادتش پذیرفته میشه و علال مضبوط یعنی و شهادتی که بر مزبوط میده بر الیه مزبوت بر الیه ممسوک بر الیه که دستش رو گرفته و برده پیش قاضی پس این 50 یا بهتر است بگیم این شش جا شهادت کور پذیرفته میشه ولا تقبلوا شهادتی جارن لن لنفسه نسعا ولا دافع ان و قبول کرده نمیشه گواهی کسی که جارن جاری میکند برای خودش نفیرا جلب میکنه برای خودش نفی را کسی که گواهی بدهد که در اون گواهی نفعی برای اون باشد شهادتش به زیرفته نمیشه مانند چی؟ مثلا شخصی مرده ورسش بیان بگن که میت نزد فلانی مالی دارد خب این مال به که میرسه؟ به همین ورسه میرسه اینجا از اون جایی که این شهادت به نفع خود و هست شهادتش قبول نمیشه باز شهادت دیگه بیاره شهادت خودش پذیرفته نمیشه پس اون جایی که جاری میشه برای خودش یا جلب میکنه برای خودش نفعی رو شهادتش قبول نمیشه ولا انها داررن. و جایی که زرری رو هم از خودش دفع میکنه باز هم شهادت شخص پذیرفته نمیشه مثلا چی طوری شخصی شخصی رو کشته خطا قتل خطا ما میدونیم که در قتل خطا اگر کسی کسی رو کشت دیه مقتول و آقله دیه مقتول و برادراش پسر اموهاش اینا میاند و دیه رو میدند خب حالا اگر آقله اومدند گواهی دادند که نه این آقا آقای قاتل عمدی کشته چون اگر قتل عمدی باشه دیگه دیه روی عاقله نمیاد و خود قاتل باید دیه رو پرداخت کنه اگر قصاص نگرفتند و دیگه خاصند خب اینجا اگر آقله از خودشون برای اینکه ضرری رو دفع کنند اومدن گواهی دادن اینجا گواهیشون پذیرفته نمیشه پس ق... پذیرفته نمیشه گواهی کسی که میخواهد برای خودش نفعی جلب کند یا ضرری از خود دور کند این بود مختصر توضیحی از قسمت اقضیه و شهادات